بخش 23 خیلی قبل از 19 آوریل 1994 من زن کروش امانی شدم یعنی خیلی قبل تر از آن که در جلسه پرسش و پاسخ دختری 17 ساله از بیل کلینتون بپرسد دنیا می خواهد شما شورت شرط افلیب را ترجیح می دهید یا شرط ماماندوز را نمیدانم چطور شد که کوروش امانی آمد خواستگاری هنوز هم نمیدانم هر وقت از کروش میپرسیدم نشانی خانه ما را کی به تو داد میگفت یادم نیست اما انگار کسی مرا به طرف خانه شما فوت کرد بعد خندی آرامی میکرد و میگفت از شوخی گذشته تقدیر راه خودش را باز میکند اما من می او فقط برای جواب دادن به این سوال تقدیرگره است. در سایر موارد اثری از اعتقاد به تقدیر در حرکات و رفتار او وجود ندارد. سه سال بعد از اخراج من از کتابخانه با پوتین های رسمندگان اسلام و شدیه بزرگی برای تصرف فاف آمده بود که چی بشود؟ او آمد و مثل همه وقت وقتهایی که پشت میز فکستنیش در حزب دیده بودمش، نگاهش به پایین بود و حساسیت عودیش عود کرده بود و عدسی شده بود ترجیعبند بند سکوتش. آن روز همه چیز کورش مثل زمانی بود که او را در حزب دیده بودم. الا اینکه آن کلاهی کشباف که با وجود سردی هوا روی سرش نکشیده بود تا آن سر پرمو زیبا را بپوشاند. با مادر و خواهر کم سن و سال و خالش آمده بود. هیچ حرفی نمیزد و لبخندش هم نصف نیمه بود یعنی طوری بود که نمیدانست لبخند بزند خوب است یا اخم کند. نکرده بود یه دستگل گل دستش بگیرد اما یک جعبه شیرینی خشک را با بی میلی دستش گرفته بود. من از پشت پنجره نزدیک شدنش را دیدم و خدا خدا کردم جعبه از دستش سر نخورد و شیرینی هایش توی حیات پخش و پلا نشود. و باعث یک عمر خنده و مسخره بازی سحلا و سوسن نشود که البته نشد همچین بیهس و حال راه میآمد انگار غذا نخورده است و نا ندارد انگار بیزور میآمد انگار یک قدم جلو میامد و دو قدم عقب میرفت از آخرین باری که او را دیده بودم تغییری نکرده بود الا اینکه دیگر شبیه یک استاد یا معلم نبود یک رسمنده شده بود. آمد و نشست روی صندلی میزبان. سهیلا دوید و یکی از مبلهای بالای اتاق پذیرایی را به او تارف کرد. او بلند شد و جایش را عوض کرد اما زیر لب گفت فرقی ندارد. همانجا هم خوب بود. خالهش تا نشست حرف را به حج و زیارت و مکه کشاند. میخواست بگوید دلش برای دیدن خانه خدا می میرود. اما نمیدانم چرا مراسم خواستگاری را برای گفتن این ضعف دل انتخاب کرده بود. خواهر کروش گفت: «خدا قسمتتون کنه خالی جون. مادر کروش نصف اول مراسم ساکت بود. نصف دیگر مراسم هم که حرف زد از زحمدی که برای بزرگ کردن کوش رو تمین کشیده حرف زد. ترجیح بند حرفهایش این بود. خدوزایه هیچ پدری رو از سر خانبادش کم نکنه. چادر مشکی کلوکی روی شانش افتاده بود و یک دستش رو روی پایش گذاشته بود. دستی کوچک که حلقه كهنه در گوشتش فرو رفته بود. وسط خاستگاری رفتم توی اتاقم تا نفس تازه کنم. چادر صورتیم لوی پایم پیچید و کم مانده بود بخورم زمین. چون گذشته از هر چیز کروش امانی اولین و آخرین خواستگار من بود. رفتم توی اتاقم و از زور استراب هی کاست هایم رو زیر و رو کردم و آخر سر هم از لج نسرین ماجدی نوار ویکتور خرار رو گذاشتم و صدایش رو کم کردم و ته دلم ریز ریز خندیدم و فکر کردم اگر کروش امانی وارسته بفهمد کنار گوشش بی چی دارم گوش می دهم، مثل مو من را از زندگی زناشویش می کشد بیرون. آن روز من و کروش امانی کمی در اتاق ارواح تنها ماندیم و با هم حرف زدیم. یعنی من یادم نمی‌آید که حرفی زده باشم. یعنی حتی نکردم از او بپرسم شورت اسلیب را ترجیح می یا ماماندوز را. حتی نکردم از او بپرسم آیا قبلن هم به خواستگاری رفته است یا نه؟ من چیزی نپرسیدم چون خوشحال بودم که آن فرشته ی دماغو با آن پیشانی جوشی به خاستگاریم آمده است و اینگار همین بس بود. اما کروش می گفت آن روز آنقدر ویراجی کردم که سرش در گرفته و وقتی رسیده خانه موسکن خورده بود توی اتاق تاریک خوابیده و خدا خدا کرده که صدای من که هی توی سرش می پیچیده راهش را بگیرد و بیرود. میگفت صدای هیچ آر و موشکی پرده های گوشش رو پاره نکرده. اما صدای من که یک ریز حرف میزدم و بیخود و بی, و بی جهت پرچانگی میکردم، گوشش رو به خون ریزی انداخته و تا دو سه روزی از گوش درد هی نالی میکرده و به خودش میپیچیده. برای همین مرخصی دو هفته تبدیل به مرخصی یک ماهی شده. اما من که باور نمیکنم. چون درست دو, دو روز بعد از خواستگاری مادرش تماس گرفت. از کجا می دانستم اوز که آنطور یورت می به طرف تلفن. وقتی داشتم می گوشی را بردارم پایم پیش خورد و افتادم زمین. صدای زوزه از ساغ پایم شنیدم. مادرم از صدای زوزه که با زنگ تلفن قاطی شده بود آمد و نوچ نوچ کنان رفت گوشی را برداشت و پرسید. شما؟ بعد یک هو اینگر رنگ برنگ هنوز درد داشتم. به من اشارکت خفه خون بگیرم و گفت خوبید خانم امانی. اینگر سی تو خفه گذاشتن روی دهانم. ساکیت شدم و بی مادرم نگاه کردم که فقط گوش میکرد و لبهایش از خوشحالی می نرزید. بلاخره که مادرم به حرف آمد گفت باید با پدرش صحبت کنم. هرچی خیر باشه همون میشه. مادر من خوب میتوانست رنگ عوض بکند. با های مذهبی حرف از خیر و انشاءالله و در پناه خدا میزد. به خواستگاری های غیر مذهبی که میرسید، از انقلاب بعد می و هی سرش رو تکان تکان میداد یعنی چه روزگار بعدی برای من درست کردند؟ این بچه هایه؟ مادر موقع خداحافظی با مادر شوهر گفت در پناه ها. و گوشی را گذاشت و به من نگاه کرد که ساق پایم را در دست گرفته و همانطور مثل مرغ دریایی تاکسی درمی خشک شده بودم آنقدر میخواستم بیصد دو باشم که حتی جرأت نمیکردم پایم را ماساژ بدهم مبادا صدای ماساژ به گوش مادر کروش امانی برسد مادر گفت عجیبه تو رو پسندیدم. گفتم مامان. چرا هی میزنی تو زوق من؟ مگه من چی عیبی دارم؟ خندید و گفت، آخه داماد چیه تو رو دیده و پسندیده؟ <تصفح> یکی از چیزهای نفرت انگیز زندگی مادرم هجاب من و سوسن بود. سوهیلا که اصلا بند این حرفها نبود. برای همین دختر محبوب مادر سوهیلا بود. میخواهم بگویم توی بوه بوهی انقلاب من و سوسن هی میرفتیم مسجد گیشا، پای سخنرانی ها می نشستیم و هی کتاب میخواندیم شریعتی و متحری، مهندس پیمان و خیلی های دیگر. به خودمان که آمدیم یک روز بزرگ با ناشیگری اما با هزار عشق و علاقه زیر گلوی مان گره خورده بود، جواب پدر به خواستگاری كرش امانی مثبت بود جواب مادر مثبت بود سوسن و سحیلا هم از دامادی که موهای قشنگ طلایی داشت خوشیشان آمده بود اما گفتند بهتر بود با پوتین نمیآمد خواستگاری. اما حالا که آمده بد نبود کمی واکس شفق به پوتینهایش میزد حالا که واکس هم نزده دستکم جورابهای تیره میپوشید تا معلوم نشود چقدر جورابهایش کسیف است. حالا که جوراب کسیف پوشیده، کاش جورابهای زومخت سربازی پایش نمیکرد. حالا که با جورابهای زومخت سربازی آمده کاش پشنهای جورابش پاره نبود. حالا که پشنهای جورابش پاره است، کاش پایش آنقدر ترک ترک نبود. و دست آخر اینکه. ای کاش ادزش آنقدر بلند و تکاندهنده نبود تا در پوش لق جبیه تقسیم اتاق پذیرایی را بیاندازد درست توی بقل خال خانم که تمام مدت خاستگاری چشمویش از آرزوی زیارت خمار بود. میخواهم بگویم همه او را پسندیده بودند، الا درخت توت حیات. این را موقعی فهمیدم که از خوشحالی رفتم پشت پنجره و به درخت نگاه کردم و از او پرسیدم، ای درخت، بگو کروش امانی چقدر دوستم داره؟ اما درخت هیچ تکان نخورد. یعنی حرکتی که نشان بدهد دارد جواب میدهد نکرد. درست مثل قصه احمد چغول بقول. ساکت ایستاده بود و نمیدونم چرا سرش رو به گنجش ها گرم کرد که روی شاخه های خوشگش نشسته بودند و در آن سرمای بی برف پرهایشان را پوف کرده بودند تا کمی گرم شود. اصلا توقع نداشتم درخت حرفم را بفهمد و جوابم را بدهد. اما به قدری عاشق بودم که دلم میخواست حرف دلم را به همه دنیا بگویم. و خوب اولین چیزی که به چشمم خورده بود درخت توت وسط حیات بود. دوباره گفتم. درخت جون منتظرم. بگو خوبه برادر بارسته و شوهر عزیزم صدا بزنم برای همیشه یا نه؟ خمیازی کشید انگار. شاید هم آهی بود و از ته ته ری شاهیش بالا آمده بود پرچه بود پشت بندش گفت کمی صبر داشته باش عجله برای چی خوبه تا زمانی که تای من در میان صبر کنی اولین توت منو بخوری دیگه میفهمی نظرم درباره کوروش چیه اینها رو گفتم که بگویم از حرف زدن درخت شوکی نشدم. انگار در آن شرایطی که بودم طبیعی بود درخت با من حرف بزند با این حال به حرفش گوش نکردم یعنی صبر نکردم توتهای درخت برسند همچین هو هل هوکی بله را به کوش امانی گفتم که انگار او کشش شلوار بود و معطل میکردم در میرفت سرکله پروانه دوباره برای عروسی من پیدا شد. با نخی اصلاح و مچین های متعدد و انگشت بریده از نخ اصلاح آمد تا همه را خوشگل کند. به من گفت، ببین، اگه خیلی خوشگلت کردم، شاباشه حسابی به بده. کرکر -کر خندیدم و گفتم، وو، مگه من چقدر حقوق می گیرم؟ گردنش را پیچ و تا به قشنگی داد و گفت، ازت می گیرم، چه داشته باشی؟ چه نداشته باشی. خب حقمی. بعد موهای سیاه و بلندش را که مدل فارا کوتاه کرده بود، زد پشت گوشش و به بی‌خاطری شاباش با جان و دل افتاد به بندانداختن و کندن موهایی که 22 سه سال توی صورتم نشسته بودند. از درد هی جیغ زدم و هی قطره قطره خودم را خیس نگردم. در عوض قطره قطره اشکی ریختم و هی به کوروش امانی فکر کردم. که دیگر می توانستم او را کوروش یا عزیزم یا شوهر عزیزم صدا بزنم. صورتم تمیز شد. پروانه آینه را داد دستم و گفت، انگار ست تا از روی صورتت برداشته شد. پوستت سفید بود و ما نمیدونستیم بعد ابروهایم را مرتب و رنگ کرد. خودم را که در آینه نگاه کردم نشناختم. چقدر خوشگیل بودم. دختری با چشمهایی دروشت، با ابروهای بلند و کمانی، لبهایی خوشفرم با انهنای مناسب در بالا و پایین و بینی مناسبی که برخلاف بینی سوسن احتیاج به جراحی نداشت. این من بودم؟ پروانه گفت، اینقدر حولو بودی یا خبر نداشتی؟ من هم از دیدن خودم تعجب کردم. چشم از آینه بر نمی و به فاصله یه ده سانیه می وای، چقدر خوشگل شدم چانه یه پروانه به طرف سقف پرواز کرد مادر آمد و گفت نازنین خانم چی شده؟ پروانه خنده گفت این دختر چه زبله صحبت شباش که شد گفت از مادرم بگیر که خیلی دست و دل بازه از توی آینه مادر را دیدم که از میان لباسهایش که از غذا پشت رو نپوشیده بود، ازگناسی در آورد و با بوسه کف دست پروانه گذاشت. من و کروش امانی ده روز بعد، در یک روز برفی سرد، با یک ازدواج ساده ساده و در دو تا اتاق توقی بالای خانه پدری کورش زندگی به مشترک را شروع کردیم. دو تا اتاق با یک آشپزخانه فسقلی و دستشویی و حمام مشترکی در طبقه پایین. خانه قدیمی و لرزان و در حال فرو ریختن که لم داده بود به اولین مغازه لوازم ورزشی میدان مانیریه. شبی که با خانه پدری خداحافظی می کردم تا به خانه بخت بروم، وقتی توی حیات ایستادم و به درخت بیبرگ توت گفتم، که زود به زود به دیدنش میآیم برفی نرم و سبوک از روی شاخه هایش روی لباس عروسیم ریخت. دستی که حتما دست پر از انگشتر سهیلا بود، خواست برفها را از رویم بتکاند که نگذاشتم. می خواستم سفیدی برف تا عبد روی سفیدی لباس عروسیم بنشیند تا دو بار خوشبختتر از دیگر عروسها باشم. ده روز قبل از عروسی پر از خیالات قشنگ بود. عقل از سرم پریده بود انگار که جز دست های کروش چیزی نمیدیدم و بیشتر از همیشه زمین میخوردم دنیایم پر از دستهای ظریف او بود که برای دراقوش گرفتنم بی بودند هی خیال پردازی می کردم و با درخت توت حرف می زدم میخوابیدم و به کروش فکر می کردم. هر قلتی که میزدم کروش هم با من میغلطید صدایش میزدم و او با جانم و جان دلم جواب میداد. از خواب بیدار می شدم، بالای سرم نشسته بود و نگاهم می کرد. می و می گفت، روزها و شبهایی هستم که میخندی. ناراحت بودم می گفت، چه کار کنم خوشحال بشوی؟ از او میپرسیدم دوستم داری؟ او میگفت گفت، ای من به قربان تو، هزار و ششصد بار دوستت دارم و مراقبت هستم. خودم را لوس می کردم که کم از تو او میگفت برای من گریه کن. چون بلد نیستم بگویم دوستت دارم. لوس تر می شدم و او میگفت زمان نشان می دهد که چقدر سیما پرستم. در خواب و بیداری آه می کشیدم و او میگفت گفت آهای آه شبانه و روزانت مقبول درگاه خدا. به او جانم میگفتم و او می گفت جانت را مینوشم. من در ده روز قبل از عروسی، اینطوری با خیال کوروش امانی وارسته اشق بازی می کردم و سرشار میشدم بعد از جشن کوچک عروسی، وقتی همه رفتند، من و کوروش روی پشت بام رفتیم و دوتایی به دورها نگاه کردیم. میان آن همه تاریکی و خانه هایی که زیر برف و کنار هم قوز کرده بودند. من داشتم دنبال خانه یک طبقه در بموست کوچک در خیابان ابو میگشتم. به دنبال نسرین ماجدی که حتم داشتم در زیر زمین خانه پدری نشسته و کتاب های حزبیش رو و برنامه خودسازیش را پی می گیرد. خبر از این که برادروار استی کنار کسی ایستاده است که لیاقت نداشت حتی یک ساعت بیشتر در کتاب خانی کودکان بماند آن شب آسمان ستاره باران که نبود هیچ سر تا سر پوشیده از ابرهای سرخ بود یعنی باز هم برف بیشتری در راه است هوا سرد بود اما من از درون گرم بودم و پشمی ظریفی که تنم کرده بودم، مرا در مقابل سرماه بیشتر از آن هم حفظ می کرد. با اورکت آمریکایی کنارم ایستاده بود. ساکت و معدب و قرق در تفکر. خیال می کردم دارد خدا را شکر می کند که عروسی به خوبی و خوشی گذشت. خیال می کردم دارد به من فکر می به اینکه چقدر خوب شد با من ازدواج کرد، که من چه دختر مکتبی و با دین و ایمانی هستم که محریم یک دوره تفسیر المیزان است که خانواده من چقدر خوبند که نخواستند عروسی در سالون باشد و داماد رو که پدر ندارد در اول زندگی زیر خرج و مخارج عروسی نبوردند و سر و ته عروسی را با مجلس زنانه در خانه عروس و مجلس مردانه در خانه آقای رستگار هم آوردند خیال میکردم با خودش فکر میکند، حالا اجازه دارم نگاهش کنم. نوازیشش کنم. قربان صدقهش بروم حالا میتوانم باز هم نگاهش کنم. بیجوی آن همه آتاشگال که مدتها در حزب از زیر نگاه رد میشدن، به صورت حلوی زنم نگاه کنم و تبارکلا احسنال خالقیم بگویم. با نفسی لرزان و نگاهی به آسمان، و برای چشیدن تعم خوشبختی ایستاده بودم و منتظر اولین حرکت عاشقانه کروش بودم. اما او هی دست دست می کرد و اگر هم حرفی می زد از چیزهایی بود که در آن موقعیت پیش پا افتاده به حساب می آمدند. حتم داشتم خود کروش بهتر از من می فهمد که در آن موقعیت چه حرفهای بیرمتی دارد می زند. با وجود حرفهایی که می زد باز هم صدرهای سکوتش، بیشتر از صدرهای حرفهایش بود و این موسیقی تمام زندگیش بود. من دلیلی جز حیا برای آن همه سکوت و تخیر نمیدیدم اما این دوره حیا و شرم داشت زیادی طولانی میشد بیشتر از سه روز از عروسی نگذشته بود که به او گفتم این همه حجب و حیا برای چیه؟ یکوری روی رو تختی ساتن لم داده بود و داشت روزنامه ارگان حزب را می خاند. مطمئن نبودم که زمان مناسبی برای اعتراض کردن است اما اعتراض کرده بودم چون نهایت سکوت من در هر مشکلی سه روز است از بالای روزنامه به تصویرم در آینه نگاه کرد و جواب داد میدونم از چی دلخوری گفتم چرا با من این کارو می کنی؟ رفته بودم سر اصل مطلب او با من همراه شد و باز هم به تصویرم گفت باید مطمئن بشم دوست دارم. سیدوگش انگار از دورها میآمد از جای ناشناس و سرد و زمخت. مکسی طولانی کردم. برای لحظه ای مغزم از کار افتاد. بعد که توانستم بفهمم چه گفتم و چه شنیدم پرسیدم. یعنی مردهایی از نوع تو اول ازدوش میکنن بعد میشینند ببینند ببینن کی به زنشون علاقه من او هم نگوزاشت و نبرداشت و گفت مردای دیگر رو نمیدونم میخوام ذهنم پاکیزشه میخوام وقتی به تو نزدیک میشم فقط به تو فکر کنم کسی بهتر از اون نمیتوانست روح و جسمم را له و لورده کند یخ کرده بودم و از درون اون میلرزیدم احساس کسی را داشتم که کامیونی از رویش رد شده است احساسی کسی که فریب بزرگی خورده، آن هم از نزدیکترین فرد زندگیش. آیا کروش میفهمید در درون من چی می وقتی گفت؟ تردید ندارم زمانی تمام وجودم مال تو می شود. و روزنامه را همانطور پخش و پلا روی تخت رها کرد و مثل شبه از کنارم گذشت و رفت طبقه پایین. به جایی که مادر و خواهرش زندگی می کردن. برای اینکه نیفتم دستم را به میز آرایش گرفتم. سرم تاپ و پس کل مال خودم نبود. میخوا بگویم کروش امانی عاشق بود. خیلی هم آشق فقط با آن همه عشق می شود زند را که با لباس خواب عروسی کنارت خوابیده. و آرایش شب عروسی هنوز روی صورتش منده است ندیده بگیری و به جای خیره شدن در چشموی او دستهایت را زیر سر بگذاری و به خیره بشوی و نصف شب همسر از کناپیه توی حال در بیاوری. بری کروش عاشق آشق بود و من میدانستم بعید است به این زودی ها قلبش پاکیزی شود و اصلا مگر من باید منتظر میماندم قلب او پاکیزه بیشود مگر او کی بود که باید منتظرش میشدم انتظاری که تازه معلوم نیست به نتیجه هم برسد من سیما انتظاری هستم اما قول نمیده هم منتظر کسی بمانم تصمیم نداشتم و بیداد راه بیاندازم و بگویم اگر دوستم ندارد پس چرا عقدم کرد چرا عجله دوست؟ چرا به خواستگاری هم آمد؟ نگفتم تو دیگر چه مردی هستی و اصلاً مردی؟ چیزی نگفتم چون رنج کشیدن در سکوت آن هم موقعی که تازه عروسی برای خودش